بزرگانا جناب امین صلی الله علیه محمد علیه و آله طیبین ترحیم الله اصحاب و در رحمت در به که آیات فقهای ما متعرض طایفه‌ای از روایت شدن که بعضی هاش ظاهر هست در این که انتفاع به میتر مطلقا جایز نیست و بعضی هاش انتفاع به میتر رو جایز میدونه یا لاعقل پوست میتر و باز هم روایت داریم که پوست میتر هم با دباقی پاک نمیشه به انتفاع جایز نیست سر جمع کردن به این روایت بود از کردیم که از روایت نسبتا مهم از این متاخره ما وارد شده روایت قاسم سیغل و اول قاسم سیغ یه مقدار رو این روایت بیشتر کار کردیم بقیه رو اینشالله بعد متعرض میشیم با چون نکاتی داشت بیشتر متعرض این روایت شد خب معلوم شد که اشکال اساسی روایت ابل قاسم و مسئله جهالت ایشانه شان مجبول و این روایت ضعیف هست کردیم مرحوم استاد در مقاسم محرمه قائم شدن به صحت روایت که روایت صحیح دخش دلالتش هم قائل به سراحت شدن یعنی سریع هست روایت که انتفاع به پوست میته و خید فروش جلد میته اشکال نداره. البته مشکلش باز اون روایت قاسم سیغل نه ابل که از امام جواد است. و در اون روایت از فر فرانده امکان ما تعمل رحشی یا ذکی یا حلاب این ظاهرش این است که اگر ذکی نباشه و باشه اشکال داره یعنی خود روایت قاسم سیغر هم باز یعنی روایت عبدالقاسم با قاسم حالا یا پسر و پدرن یا دو نفرن یا یه نفر این خود روایت هم با تا تهاجزی دار ما اول گفتیم بخش‌های سندیش رو و مستریش رو تمام بکنیم بعد درسیم به بخش‌های تا تآروز و تا آرزش راجع به این روایت قاسم سیغرم اگر بخوایم بحث‌های سندی بکنیم چون ایشان در کتاب رجالی ما روز ذکر نشده یه مقدار مثلا بیشتر صحبت کنه کن. که ذکر شدن یا اون تحرز شدن تحرز به احوالشون خیلی یه جایی که نکته خاصی باشه از که یه بحث ما راجع به خود یشانه راجعه به خود عبال قاسم سیغل یا قاسم سیغل یه بحث راجع به خصوص این رقایت این مانه ما نهنفی. و ما بیشتر هدفمون اون نهوه کیفیت کارهاست ها. و اصولا بحثو چگونه آیون باید بحثی ایشان باید خارج بحثی کنیشن از کامتای آیون ما نباب رجالی که در اختیار ما هست باید اول درست اون که در اختیار ما هست که بیشتر جمعه های تعبد داره اونو در نظر بگیرید معلوماتی که در اختیار ما هست بعد با جمع و تفریق و ترکیب و تحلیل و اون معلومات بتونیم یک نتیجی گیریه واضحی بکن من درست کردم که باب اشخاصی که در اصادی ما هست این چون در جای دیگه گفته نشده حالا فضل از ابداعات من درست یه بارم سابق گفتم بازم تکرار میکنم نافع خیلی نافع، اصولا ما سه محور داریم یه محور محور روایات ماست که گاهی افراد با یک عنوانی تو محور روایات آمده، یه محور کتب رجالی ما هستن یه محورم کتب فهارس ما هستن مثل فهرست نجامشی و فهرست شیخ توسی در کتب اهل سنت در بحث های رجالی دو محور دارن روایت و رجال اونا دیگه کتب فهارس ندارن دارن اما فهارسشون اونقدر آور نیست یعنی کار روز زیاد نشون اونا دو محور بیشتر مردم پس ما اصولاً قبل از اینکه وارد نتیجی گیری بشیم اول بعد این محور ها رو کاملا دقت میکنم این یک نقطه یه نکته دیگه راجع به تدوین حدیث شیعه من سابقا عرض کردم مؤزم حدیث ما اصل تدوینش در کوفه است از سالهای نوت که زمان امام سجاد یا هشتاد نوت تا حدود سالهای صدا پنجا اما خیلی حیات امام صادق، یعنی بعد از زفات امام صادق، امده حدیث ما که الان در اختیار ما قرار گرفته مؤزم این حدیث مال این برحله است و این تدوین در درجه اول شاید بالای 90 درصد میراس های ما در کوفه تدلیم شده یه مختصرش در بسته و از اون مختصرته در مدینه چیزهای بسیار نادری هم در قوم اجداد این اشاره که در قوم بودن به اساس اصاس حدیث ما کوفه است اینو حالا این حدیث کوفه بعد به دو شعبه اساسی تقسیم میشه از زمان از جوا حضرت کازم سلامانگانه چون شهر بغداد اواخر حیات امام ساده تاسیس میشه. ترجه شهر میشه، عاصبه میشه، پایتخت میشه. ما رو توجه قرار میگیره. ایده زیادی از بزرگان اصحاب ما در بغداد، یا اگر از کوفه بودن، بیان بغدادی یا متولد ورزاده. یک خط حدیث ما میره بغداد که به اصطلاح در که مدرسه اوله بغداد. مثل ابن عربی، ابن مسعود، ابن عبدالرحمن. مصادف کنید ببینید که، بسنتی بزرگانی که ما داریم، مثل ابن قلوبی، مدرسه بعد. این مدرسه از زمان ها شروع میشه تا سید مرتضا شد بعد هم کلینی در قوم بود میاد برای بغداد شروع کلینی رو در قوم تفکرش بغدادیه و شیخ توصیه مقولوه شیخ مفید سید مرتضا سید رزی همجور بگیری سلال دیگران تا شیخ توصی. و با حجرت شیخ توصی دیگه این وجود فیزیکی بغداد هم برای حوضای شیعه تمام میشه این فتره مخصوصا این فتره دوم از زمان آمدن کلینی و تا زمان هجرت شیخ توسی یه فتره بسیار مهمیه در افکار شیعه یعنی الان اون که الان که من در خدمت رو نشستم تقریبا قابل, قابل قبول شده در حوزه‌های های ما چه در محور کلام، چه در محور فرض و چه در محور حدیث، چه در محور فقه همیشه که الان بیشتر مورد تعرض و بین هشتاد تا 90 درصدش حال اینه اصلا اون که ما الان داریم مال همین قدس یعنی ما الان بیشتر مدیون بغداد هستیم تا قوم لکن از زمان موسی جعفر جعفر بیشتر از زمان عزالدین و خاطر وجود اشاعره که یمنی بودن و عرب بودن یه مقدار زیادی ام میراث های کوفه میاد قوم اینا هم که اون میشه همین میراث های لاینه هاشم برقیه پدر میراث احمد بن محمد بن ایسای اشعری به الى آخری در قوم هم یعنی دو تا مکتب برای شیعه به موازات هم درست میشه مکتب اول اول تأسیسه که در بغداده مکتب دوم مکتب تنقیه بررسی انتقاد نقادی قبول کردن رد کردن جمع کردن اینها در دو تا مکتب متعارض تقریبا بعضها در مکتب دوم شدت تا عارض می مکتب بغداد و مکتب قوم این دوتا مکتب همزمان رشدون من فیران نمیخوام خیلی شرح اینا رو بلنم ایشالا این اصل حدیث ماست و که ما به ازایی این یه مقدار احادیث ما تولدش مال کوفه نیست مثلا از زمان ماماهادی از جواده اینا میرازهای متاخر ما اینا ریشهاش در کوفه نیستن مثلا همین شخصی که الان ما صحبت دربارش داریم عبالقاسم سیغن یا قاسم سیغل اینها مال زمانهای متأخره. اینشون در هر کجایی بوده این جزبه میراث های کوفه ما که بعد بیا به بغداد آمده یا به قوم آمده نیست نصلا خودش میراث متاخریه ما از این شخص یا اول قاسم یا قاسم سیغل فعلا در محور اول ما که روایات باشه از قاسم سیغل این عنوان از حضرت رضا داری همین قاسم سیغل نامه به حضرت جواب نوشته. از شخص دیگری به عنوان قاسم سیغرل یه روایت شفاهی از امام جهاد داره که در حال احرام حضرت مثلا سایه سرشون رو مسئول در اون سخت محمل رو هم باز کرده تا اینکه سایه سرش نباشه یه روایت داریم از قاسم سیغرل که کتابت نیست مکاتبه نیست بقیه اون چیزی که داریم مکاتبه است و قاسم القاسم سیغرل که اون هم احتمالا زبان احتفادی باشه و به صورت مکاتبه پس ما الان در معیار روایات ما چیزی در حدود سالهای صد و مثلا تا زمان امام حالی این درست مال میراسهای متاخر ماست میراسهای اصلی ما نیست این میراسهای متاخر ماست البته این میراسهای متأخر در صورت بوده مکاتله بوده توقیات بوده این میراسهای متأخر اینطوری به هم به صورت خب کم بوده میرفته سامر را از هن ده از دهادی یا حضرت علی تابون الله علیه یا موفق میسر خراسان خدمت حضرت عزادزا سلام الله علیه بوده اینا بیشترش یعنی قسمتش رو بگیم بیشتر بیشتره کمستون میراثی عزادزا زیاد است که به واسطه سماعه این میراث های متأخره ما این میراث های متأخر ما خودش یک ذوابط خاصه خودش داره ان شاء الله چهری بعد توزیعش عرض می کنم پس برابر این به حسب روایات ما با شرط شخص یا شخصه یا ثلاثه چون نمی‌دونیم دقیقاً چند نفرن ما روبرو هستیم و در روایات ما این اناوین آمده الان در روایات ما یکی عنوان قاسم و سیغل آمده یک روایت هم داریم که در یک کتاب قاسم ابن سیغل با بین یک کتاب قاسم و سیغل مال شیخ دوسی. پس قاسم و سیغل قاسم ابن سیغل با این عنوان از حضرت رضا مکاتبه داره از حضرت جواد مکاتبه داره در روایات نه در کتب رجال حالا قبل از اینکه این, که این توضیح هم ارزو کنم این قاسم سیردی اول قاسم القاسم هر چی اسمش هست ایشون مؤلف هم نیست چون مؤلف نیست پس در فهارس نیامده ایشون راحت شد یک بخش کار خیالتون راحت شد پس ایشون رو با باید در دو جا دنبالش بگی یکی روایات یکم رجال دیگه جای دیگه ایشون نداره در فهارسیشون وجود نداره چون کتاب نمیشته چون تعلیفی نداشته چون جزا معلفی نیستن روشن شد من میخوام تقسیم کلیه چهره ایشان بکنم که روشن بشه یک نفرم دو نفرن سه نفر. یا میرسیم به نتیجه یا نمیرسیم به نتیجه این به این قسم پس ما دو در, در دو بخش اون چه که ما الان در روایات داریم به استثناء یک روایت که از حضرت جواد نقل میکنه و راویه هو این از اشائره قومه به نام علی ابن ریان علی ابن ریان از اشائره قومه از عربهای های و قوم علی بن ریان ابن سلط اشعری او نقل کرده از قاسم سیغل که از جواد در حال احرام این بالای محمل رو داشته ما تنها روایتی که داریم که غیر از مکاتبه از همینه بقیه مکاتبه هست روشن شد مکاتبه هم از قاسم سیغل داریم در روایات قاسم ابن سیغل داریم اون دو نسخه از استفسار یه جور تحضیب یه جور اون داره بیاره بیاره بیاره. و از حضرت جواد داریم از حضرت رضا داریم حضرت جواد دیگه نداریم قاسم سیغل همین یه روایت واحده هم هست مرموم شیخ در تهذیب اون رو ابرده به عنوان ان سیغل در استفصال داره قاسم و سیغل و کتب الیه ایران اینطوری داره که احتمالا این همون به حضرت حادی باشه پس ما در اناوین روایات قاسم سیغل از سیغل این دوتا قبل قاسم سیغل هم داریم این دو واسه که الان میخوایم بخونیم از قاسم سیغل هم روایت داشت در مانه قبل قاسم سیغل روایت از حضرت رضا نداره ابو القاسم با این عمر هر کی الان ما با عنوان ابو القاسم داریم، دارین هر چی دارین تماما مکاتبه از مثلا بگه حضرت رضا اینجور فرمودن دیدم حضرت اینجور گفتن خدمتشون بودیم نه نداریم اون چیزی که دارین مکاتبه هست. این یک دو اون چیزی که ما الان از ابو القاسم عنوان ابو القاسم سیقتل دارین اون چیزی که از ما از عنوان ابو القاسم سیقتل مذمرم هست همش توش كتب الی كتبت الیه كتبه الیه تو هیچ کدوم از اینها تسریح نداری ده تا فهمیدی تو هیچ کدوم از اینها تسریح عنایت منم که الان رفیق دکسو بگم اون چیزی من که نظر از واس كتب برعکس از غیر كتب برعکس چون معجم عزیز استاد خودم مراجعه مستدل نکردم به نقل از معجم استاد خب تمام اینها به صورت مکاتبه است با كتب كتب و با عنوان کتب علی کتب تو علی کتب و علی این حکمت این با عنوان عبالقاس رسوی و در خیلی از اینها هم محمد ابن ایسا ابن عبید ازش نغل میکنه چیز روزان اسمش برده محمد ابن ایسای عبیدی یختینی هم بهش میگن عبیدی هم بهش میگن یختینی هم بهش بیشتر ازش نغل میکنه و کافی بده یک مورد در کافی داریم مخلط ابن موسا ار عب... راضی ابل قاسم همین مقدار سیغل توش نداره مخلد ابن موسا ار راضی ابل قاسم دقیق فرمودیم کلمه سیغل نداره ابل قاسم نداره سیغل نداره این هم در روایات یکیه یه, یه مورد بیشتر نداره خب روشن شد این شاید یک داره البته اونجا هم راوی محمد بن یس بن عبیده همون راوی اونجا هم کتب تویله کتب تویله همون موردن به بقیه متن ادبیات موضوع ادبیات ادبیات سوالش هم همون طوره انصاف وقتی متن سوال نگاه میکنه حس میکنه با ابو القاسم سیغری یکیه اما تو اون سیغلا نداره دقیق فرمودید این منشأ شده چون اونجا نداره مثل جامع رواه، مثل استاد این رو با عبالقاسم سیغل یکی نگرفته اما مرحوم توستری در قاموس رجال بگی این همونه این مخلد ابن موسا قاسم رازی همونه و انصافا هم حرف مرحوم قاموس بد نیست انصافا از کرده فقط مشکل حرف قاموس در اونجا داره مخلد ابن موسر رازی عبل قاسم نداره از سیغل اگه از سیغل بود خیلی باحت بود شغل سیغل یعنی شمشیر یا پراش سمسیر یا سیغل جلای شمشیر اون تو اون بباید تک روایت می حالا ما فعلا فقط در روایات هستیم کار به کتاب بگیدن در باب اینکه که محرم چیه تلویه قصد تلویه محرم در اونجاست و مفتابه هم هست اون روایات مفتابه هم هست این روایتش درست قبوله مظم روایات معظم روایاتی که از لغاصن سرقللی یا سیغل آمده به استاع رواتدی ال در بحث معیت است متابه ها هم هست از حال هم به بودید این هم از این نکته دت بودیم این نکم در روایت ابغاص سیغل در نظر بگیرید مفتبهاست خب با اینجا مجبور پس اگر این, این احتمال مرحومه آیتوستری در قاموس احتمال بدی نیست. اون وقت با زمینش اینطور میشه که ظاهرا را همشه به هم بریزیم. بعد هم داره این اصناع سیوف و عبی امنس سلطان به احتمال بسیار قوی ایشان اهل ری یا تهران فعلی بودن و اسمش هم مخلد ابن موساز کنیش اول قاسمه. اگر اون قاسم سیغل پسر ایشان باشه میشه قاسم اینو مخلط ابن موسا. اون امروز احراز نگری بزنید و شخصی بوده که مثلا موقعیت اجتماعی داشته شغل مهمی داشته و کسی بوده که طرف معامله با سلطان بوده دعید میدونیم این شخص مثلا در بغداد بوده که محمد می ایسا ازو نقر کرده باشد چون اگر در بغداد بود اون گفت ابی سلطان. در اون زمان خلیفه در بغداد بود عمرایی که در مناسب بودن مثلا آل سلجوق یا دیگران یا آل مثلا حکومت مثلا حکومت دوله ابن بو به حساب بویه به آل بویه که در اصفهان بودن شیرازه بینا سلطان میگفتن سلطان محمود غزنوی مثلا محروف. در جهاد اسلام غیر از خلیفه رو سلاطین میگفته ابی از سلطان این احتمالاً ایشان در ری بوده احتمالاً اگه این اسم رو و شخصیتی برای خودش بوده از نحره سوالاتش هم نشون بوده آدم چیز سهمیه آدم بی سوادی نیست و روایاتش هم مفتابه هاست حالا اون کتب و کیه؟ ما تا حالا بیشتر احتمال اون که از نهادی باشه حالا عرض میکنم نقاتش لیکن در هیچ کدوم از این روایات اسم برده نشده میتنم چیز عجیبیه خوب دقت در عنوان عبالقاسم سیقل اسم برده نشده. در عنوان قاسم سیغل چرا یکیش اسم برده شد در بقیه اسم برده نشده احتمال من کردم این احتمال هست که مرهوم محمد بن ایسا به قم و ری آمده باشه شو بزرگان قبضش نهارده شاید هم همون که من از کردم که تابید من دیدم برای محمد بن ایسا مسائل رجال اول حسن سالس هنوز هم نبید. کجا این مطلب من دیدم هنوزم پیدا نکردم. یا توقیات به تعبیر فرمول نجاشی به احتمال بسیار قوی ایشون در سفرهاشون این استفساعاتی که از عیمه متاخته شده جمع کرده چون منحصر به این هم نیست یعنی برفرزم حالا این, این اسمی رو که من دیدم درست نباشه الان ما زیادی روایات داریم که محمد بنیسا از افراد مجبور کتاب علی کتب تو به این عنوان هست بیرد از اول قاسم سیرم منحصر به ایشان نیست افراد شیا در زمان هر امامی که شد زندگی میکرده، میتونیم نگوییم که دیگه ی به همون، به همون یه مفهوم فصلی که کلی که نبوده، انسان کلی که نبوده، ظاهرا نیم اما حدیم داره نزدیک. حالا عرض میکنم. روشن شد آیا این مجموعه اموری که ما الان در روایات داریم، روشن شد. اگر ما بخوایم استخراج میکنیم از بهم اون، بهمون چی در کتب رجال داریم؟ این در رجال کشی الان کتب رجالی ما تقریبا منحصده به همین سه کتابه رجال برگیست که اسم برده خیلی توصیلی نداره نا ناداره چی دیگرشت در رجال شیخ توصی در رجال کشی در رجال کشی هم ایشان چیزی نداره خب اینی که هم خارج ما اون چه که الان داریم در کتب رجالی فقط در رجال برقی در اصحاب حضرت هادی اسمیشون رو برده حضرت رضا و حضرت جواد هم اسم نداره این یکی دو در اونجا هم قاسم و سیغل اسم گرده این مشکل کار یعنی این به جایی که حل مشکل بکنه مشکل رو در حیقت بیشتر کرده اونی که ما داریم به اسم قاسم و تو روایات اونی که تفریح شده یکی حضرت رزاستی که حضرت جواد اصلا ما تو روایات قاسم سیغل و سیغل و نشده اونی که عبالقاسم سیغل داریم که ما احتمال دیم حضرت هادی باشه اون بهتر میگوره یعنی انسجامش بیشتره اما اونی که در روایت ما هست عبالقاسم سیغله یعنی اون چرا که در رجال برقی آمده اون قاسم سیغل در اصحاب حضرت الان ما توی محور روایات نداریم دقیقه مربوی یعنی اینجا کتاب رجال ما به جایی که مشکل ما رو حل بکنه مشکل ما رو زیاد مرحوم شیخ توسی هم در رجال خودش در اصحاب از دادی همین عنوان رو به کار برده آسم و سیغل حالا با اینکه شیخ توسی پنشیش تا رو حاله قاسم سیغل داره اولا شیخ توسی اصلا اسم ابل قاسم سیغل نبرده درود شد اسم ابل قاسم مخلد موسای رازی رو هم نبرده فقط اسم قاسم و هم برده امچن اصحاب از دادی این کاری که در کتاب برقی شده. من با شان تقی هم در قاموس به شیخ اشکال کرده که چرا شیخ تو از حوالی سادی اسم برده. خب خوب بود شیخ خطو از رضا از اجاره مصیحون میبر برد. چون در مکاتبه داریم مکاتبه که دیروز خود دیدیه کتاب ژیلال رضا و کتاب ژیلال ابی جعفر استان. ارث کنم خدمتتون که یک قدر بفرمایید من عرض کردم مرحوم شیخ طوسی و هر رجالی اخصاص به شیخ توسی نداره علامه فرسو فرسوین مجموع رجالی جامعه روات مثلا من هر نبید مرموهای هر نبید مرموهای هر نبید استاد از کردیم خلاصه کار رجالی دو تاست خوب دقت بکنیم یکی اینکه رجالی وقتی رجال نمشته از رجال منابعه رجالی خبری خودش نقل کرده دوم خودش استقراط و روایات کرده حالا خیلی ازش تعبیر بکنیم منابع منقول منابع استقرائی حالا به اسطلاح مختص رجال آی هم همینطوره رجال علامه هم همینطوره فرمه کنم هر کسی که الان کتاب رجالی می دو تا منبع داره یه منبعش مسادر سابقه یه منبعش هم استقرائهاتو به بخلی فرمولیم شیخ توسی قدس الله نفسه در رجال هم همین کاره کرده یه مقدارش منابع سابق منابع منقوله ایشانه یه خود خودشون استقرار کردن این اشکال مرحوم آقای توستری به شیخ وقتی برده که شیخ ادعای سای در استقلال کرده بشه ما الان ده ها بلکه صده ها روایت داریم در همین کتب عربه که اسم رواتشون رو آمده شیخ توسی در اجاست نبورده البته یه بقدر زیاد بریم که شیخ معلوم استقرار کرده اون چه که به ذهن ما رسید این است که شیخ استقرار کرده اضافه بر منابع قبلی خودش هم استقرار کرده لكن استقرارش کامل نیست حالا من خود من به ذهنم اینه که سر رجال شیخ مصوده است به مبیزه نرسید. یه در وقتی هم بس مقاضی رو ارض کردم اعتقاد من اینه که شیخ مثل یه دفتری گذاشته بوده یکی داشت و ساده اجازه اصحاب باقی اجازه اصحاب رزا من لمیاره هر جا برخورد میکرده اگه در کتاب رجالی بوده میدمشته برخورد میکرده تو رو باید میدمشته و شیخ قبل از اینکه این کار رو تمام بکنه و به ما بیزده برسونه مجبور به حجرت رو نجف شد اونجه که الان به نام رجال شیخ هست به نظر ما پیاسش نکنیم با معجم استاد معجم استاد مبیزه شده کار شده تمام شده شریف شده بعد استطلاق شده غلط هاشی شده این کار تمام شده به نظر من رجال مرحوم شیخ کامل نشده به نظر خود من این کتاب ناقصیه و این اشکال به مرحوم شیخ وارد نیست چون شیخ یعنی اشکال وارد هست به یک معنا شیخ این فقط در این مورد نیست. ده ها مورد هست که افراد اصماعشون در روایات هست به شیختونشون نبود اقتصاد بیمورد نداره به ذهن من این طور میاد که شیخ قدس الله سبه در این مسئله رو منابع منقول اعتماد کرده نه رو منابع استقراض در کتاب برقی بوده جز اصحاب استادی قاسم و سیغلیشون رو میشته و الا اگر مرحوم شیخ مخواست استقراب بکنه، الان الان این دو حال اگه روایتی بوده ساخت شده الان ما حتی یک حدیث واحد در کتب عربه از قاسم و سیغل عن الهادی نداریم یک روایت داریم قاسم و سیغل عن الرضا و عن الرجا یکی ما داریم این یکیش مکاتبه است یکی دیگر داریم که مشافه است یکی از اجاوش این کاری کرده و ما از قاسم و سیغل روایتی از الان بوده که شده. و بالعکس عبال قاسم سیغل بریم کسی شیخ اسمشون نبوده توی جا پس در منابع رجالی ما فعلا فقط اسم قاسم و سیغل در اصحاب هستهادی هست فقط همین مقدار در منابع فهرستی هم بخاطر که ایشان فهرست ننویشن که اسم ایشان نرفته مرحوم کشی هم کلن در رجال نامی از ایشان نیورده. پس معلوم شد ما اگر بخواییم بیشتر چیزی بفرمیم باید برگردیم به همون روایات به الا از کتب رجالی فعلا چیز درست و درمون دستگیر ما نمیشه آلا یعنی هم که بعد آنادن همین کاری کردن کار خاصی نکردن مثلا مجموعه رجال قحبایی قدس الله نفسه ایشون مناش این بوده که متونه کتب رجالیه به اول خودش رو نقل بکنه ایشون مثلا از این عنوان قاسم سیغار ابو القاسم سیغار اینو خصوصی که از کردین ایشون فقط عنوان قاسم سیغار رو در اصحاب اعصادی از رجال شیخ نقل هیچ دیگه نگفته اصلا اسم ابو القاسم سیغار هم نگفته خیلی هم مبنای کارشون اینه خاص این در منتهی مقال که معروف از رجال کبیر مرحوم رجال کبیر در اونجا اصلا اسم ایشون نیامده نه بون قاسم نه بون ابو قاسم به امثال میخوام بگم میخوام آشنا بشید چرا تو ایشون میگه در اول کتاب من مجاهیل و مهمل ها رو نمیارم خویندی خب که قاسم زیکان تو عصا و اصطادی هم یعنی هر کتابی یک روشی داره خودش نشون میده. مثلاً علامه نه اورد. چون ارزش نداره شیر. با مثال بگم اما آی خویت. چون آی خویت هم روش استقرایی داره و روش استغراییشون در کوتوله کامله و اضافی بر او هم روش نقلی هم داره. آی خویت هرگاه این مبنای خودشون بیشتر مکررال اسمی نگاره نه یک بار. مشون و میدونید که اول خویی به هر اسمی را که آوردن یک شماره هم نشدند بعدن دکتر مثلا این ثابت نیز خطا از اشتباهه حالا این یک ردی که امروز در علم به قبول نمیکنه وقتی یک اسمی ثابت نیست چرا برای شماره گذاشتید شماره تسلسل سر تا سر کتاب گذاشتید مثلا آخر کتاب 17000 نفر مثلا واسه بودی 24000 نفر در واقع نگاه میکنن پش 2000 نفرشون وجود خارجی ندارن وجود خارجی ندارن تصال. مثلا در خارج وجود حرومه آخویی آی اسم این آقا رو به این هنابین آوردن قاسم و سیغل آوردن قاسم ابن و سیغل آوردن تو جیل 23 از سیغل آوردن تو جیل 22 اول قاسم مخلد ابن موسه رازی آوردن بایدم تو جیل 18 هم مخلد ابن موسه رازی اول قاسم آوردن این یک عباسد بیشتر داشت داشت و دو جا آوردن اسم ابن قاسم سیغل مکنی این روشن شد که چرا آی خوی حالا این اشکال نکنید که مثلا پس معلوم شد مثلا کتاب آیه خوی بیش از مثلا فلان کتاب اسم بوده. نه روش فر میکنه. مثلا در منتر رجال مرومه ریس به قول مروه در اونجا اصلاً اسمشون رو چون ما اسم می‌بریم می‌ارزش از اون ماجلو چیز بود در رجال برقی آمده مجموع در رجال شیخ آمده مجبور. من این بحث روز مطرح کردم یک مقدار شما با نحوه کار آشنا بشید. پس در حقیقت ما اگر یک چیزی رو بخوایم تعبدن قبول بکنیم فوقش, فوقش. بگیم این قاسم و که در کتاب برقی یا شیخ آمده اشتباهه اون اول قاسم سیغله و اون همونه که از حضرت حادی کرده. یعنی به قول شوخی محروف نصف کلام شیخ رو قبول بکنید نصف دیگه شو قبول نکنیم این که او از اصحاب اصطحادی قبول بکنیم این که اسمش قاسم و قبول نکنیم اشتباه کرده اونی که ما نزش مکاتبات داریم و میخوره به طبق اصطحادی باشه اول قاسم سیغل نه قاسم و سیغل علایه ما الان یک مشکلی راجب این آقا کلن داریم اون که ما در کتب روایات داریم محور روایات ما با محور رجال ما اضافه بر این که محور رجال بسیار کمه یعنی فقط در این مقدار ال و الصيغتی اصحاب الها دیگه همین مقدار هیچ در محور رجال بسیار کمه معلومات ما در محور روایات معلومات ما بیشتره و این همون نکته است که عرض کردم الان ما می توانیم خیلی از روات رو با روایات ما بهتر بشناسیم تا با کتب رجالی اینا میگاد ما اجمالا شناختیم نواسای بن گودار رو یک نفر یا دو نفر و این آقا مثلا فرض کنیم یا نه سلطان سوالات متعدد داشته سوالاتش هم علمیه بعضیش هاش انصافا خیلی قشنگه یک سوال شجاعانه این که آیا امیرالمومنین که رسول الله قرص نستمیت قصد کرد یا نه خب این یک سوال حساسیه خب از عمر امام بخوام بگم رسول الله مثلا قس کرده نجیس بوده مثلا بله از عمر بخوام بگم قس نکرده جواب امام هم خیلی قشنگه قال کتب علیه السلام کان النبی تاهرن متحرن پیغمبر پاک بود و له فعل علی و جرت سنده این چقدر جواب؟ نگفت اختصال علی فعل علیو اگر کلمه اختصال هم امام بکار بگوست این بوهم این معنی بود مثلا بدن رسولا نشکسته مسئله چون از کنم معنی اختصال یا شستن در زبان فارسی ملازعه با اینکه یک نجاستی بوده انسان میخواد ازالهش بکنه دیگه خیلی تعبیر امام هم زیباش بلاکله نهو فعل و جرت السنه میگه به اختصار و جهت السنه هم سوال اون آقا دقیقه هم جواب خیلی دقیق و بقیه روایتش هم همینطوره این ها روایت که ما از ابو قاسم سیغند دارین مفته با هست روایتش یک یک زید کمی گیر داشته باشه اونم جوابش در محل خودش داده باشه این یک نقطه اون که ما الان در دست رست داریم راوی بیشتر اینها هم محمد ابن ایسای عبیدی است بله یک روایت داریم که آه خوبی ابو اشاره فرمدن توی جلد 23 در عنوان سیغل شیخ توسی اون روایت رو که نقل میکنه از محمد ابن ایسا از ابن ایسا این عبل خاص به سیغل که نظر روزه است نظر کرده روزه بیگه نگرفته ما میفرماید باید قضا بکنید یعنی که این رو به بحث ببینید از حالو البته حدی از اصحاب مثل مرحوم استاد در خصوص نذر روزه قائل هستن قضا در متغیر نذر نیست این حیدرزه با تفسیر گفتیم در مطلقاً نذر قضا بشه فرقی به روز غیر روزه نداره بحثی در بحث نذر اونجا مفراکه که اون روایت هم معمولم به بحث اون روایتی که اول قاسم سیغل لیکن یک چیز عجیبی که در اون روایت هست اینه که مثلا شیخ توسی که آورده ان اول قاسم سیغل کتب الیه ایغان هم داره منوش این ادهی سوال بوده کتاب الیه کتاب الیه. و کتب علیه, کتب علیه. علیه ایغان انوجوده این این روایت در کتاب کلینی آمده لیکن ان علی ابن محضیه این خیلی عجیبه و همونم محمد ابن ایسام هست من ابن علی ابن مهزیار دقیقا یکیه انهو کتب ایلی از هم جا شروع میشه کتب ایلی تونه تعلیم محزیار هم دیگه اسم قاسم سیغل نیست اول قاسم سیغل نیز. اونجا نیست اما در کتاب تهذیب استفسار هست آیا این نشون میده که این استفتاعت رو مرحوم علی ابن مهزیار جمع کرده غیر از محمد ابن ایسا ای سوال جواب مثلا هیچ اختلاف با هم نداره مثلا با متن مثل استفسار متن تهذیب یک کمی اختلاف داره مثلا در متن مثل تهذیب آمدن محمد بن ایسا ان ابي ان قاسم س... ان... ان این ابي ما هیچ جدی دیگه جز در این روایت که من احتمال میدم شاید این ابي نبوده عبد القاسم سیر بوده، اشتباه به ابي نوشته شده الان اینکیف ما کن حالا به هر حال ما غیر از اینجوری توی دیگه نداره کلمه ابي باشه سبب دیگر توجیه ایشون رو یاد داد. با اینکه ماکان این احتمال رو هم من ندیدم کسی متحسس و ولی کار بشه. احتمال اگر باشه اضافه بر محمد بن اسماعیل بن عبید مرحوم علی بن محزیار هم این استفسارات جمع کرده. حالا به حال اینم یک فقط تو این روایت داریم که علی بن محزیار هست به اسم ابوالقاسم سیغال نیست، این یعنی اسم سیقل نیست، بلکه دقیقاً معنی یکی است. سؤالاً جواب حتی سوالا و جوابا مثل دقیقا هیچ فرقی با هم نبه. این هم راجعه به این قسمه این چه که ما الان میتونیم اجمالا در بیاریم این شخص عبالغاسم سیخم همون احتمالی که مرمو شیخان از عبارت شیخ احتمال ما دادیم احتمال بسیار قوی باشه جز اصحاب از باشه کتابات به بوده احتمالش قویه انصافاً با طبقه محمده به ایسا هم میخوره به هر حال چه که ما الان از مجموعه اینها ها مرحوم محمد ابن ایسا اده از استفتاعت ایشان رو جمع کرده این مقدار رو ما الان کاملا میفهمیم. این استفتاعتم مشکلی نداره حالا یا از خود همین استفتاعت بفهمیم اول قاصل سیغل از شیعه و مستقیم بوده یا اگر برفرض هم نفهمیم از جمع آوری مرحوم محمد ابن ایسا مطلب به دست می و نزا با در نظر گرفتن مجموعه روایات و شواهد انصافاً میشه روایتش معتبر حساب کرد اولو مرحوم استاد هم صحیح صحیحه استلاح صحیح شاد مشکل باشه اما بشه اجمالاً او اعتماد پیدا کرد او یه قاسم سیغل یه اونه قاسم سیغل او الان عمرش مجبوره امیز روشن نیست و روایتی که ما توش قاسم سیغل داریم به نحوه مکاتبه از و رضا منحصر از به یک روایت در کتاب کافی که تو تا زعف سند داریم نه یک زعف سند من همیشه ارز کردم وقتی سند روشن نباشه گیر داریم مده اونجا یک روایت هم از قاسم سیدر که نقل از حضرت جواب کرده اونو هم فعلا گیر داریم یعنی گیر به این معنا که دقیقت نمیتونه دیگه این با او یکیه دعوای اتحاد این دو نفر یا پدر و پسر بوده این کار مشکلیه. پس به نظر ما میاداره بایات عبدالقاسم سیغل که الان دست ما رسیده توسط محمد بن ایسا و غیر محمد بن ایسا هم داریم الان توضیح از می انصافا خالی از اعتماد نیست مشکلی در اونها نیست سندها ها، متنهاش هاش هم واضحه خلط متنی خلط متنی هم نداره جواب های امام هم خیلی دقیق و همونطور که امام فهموندن این نعلا کل حقه نحقی و علا کل ثباب نورا انصافا روایاتش مطون روایاتش علیه نورون انصافا اینو آدم حس مفتابه هم هست اده الاسخام دقیق میمونه این روایت که اده از اصحام مثل مرمشه همه بر تغییه کردن ما هم اعز کردیم که دایی بر همه بر تغییه نیسی کلیه البته هنوز نقاط ابهام داره قمده نقاط ابهام آیا اونی که رایی از امام است قاسمه یا ابل قاسمه در روایات ابل قاسمه این که بیشتر روایت آیا قاسم سیغل با اون یکیست نمیتونیم بگیم بله آیا قاسم دو تا اصلا خود قاسم اونی که از از جواد نمیتونی که مکاتبه نمیتونیم احتمالش هست ما الان نمیتونیم ادعای اتحاد حتی در قاسم سیغل بکنیم چه برسه با ابل قاسم؟ شواهدی نداریم رجالی نداریم. شواهد حدیثی ما هم فعلا کافی نیست در این راجبی و, و اما این روایت این روایت یک مشکل دیگری داره. و اون این است که مرحوم کلینی یک قسمت روایت رو آورده از احمد بن محمد بن عیسی، احمد محمد بن عیسی اشعری معروف، تن محمد بن عیسی بن عبید انعاب قاسم سیستانی. شیخ طوسی همین روایت رو کامل اوورده احمد ابن محمد ابن عیسی آن قاسم استیدار. یعنی طبق ظاهر شیخ احمد ابن محمد ابن عیسی از ابی قاسم نه میکنه. و طبق عبارت مراشون کلینی. شیخ معاذ. و عبارت معلوم کلینی احمد ابن محمد توسط محمد ابن عیسی ابن ابریدار. شیخ در جای دیگه هم این روایت رو او اونجا هم محمد ابن عیسی می آورد. شیخ در جای دیگه؟ در تحضیح میخونم رو تحضیح ما بردم بگید چون وقت همون فقط اشاره میکنم اده از آوین رجالی ها مثل مرحوم و استاد مرحوم و استاد هم در شرح ترجمه اول قاسم سیغل مطلب فرمودن هم در احمد بن محمد بن ایسا هم در جلد دو و هم در جلد بیست و دو مرحوم و استاد فرمونده که دمشته احمد بن محمد بن ایسا شیخ دوسی قلطه ثوابش احمد ابن محمد, ان محمد ابن این که آمده احمد بن محمد بن عیسی احد ابو القاسم سیرال در تهذیب غلطه پس بحث بر این روایت به خصوص باید ما انجام بدیم که سر این روایت چیه واقعا همونطوری است که استاد فرمودن محمد بن عیسی باشه همسر ایشون هم گفته هم این جوامده تحلیلی که ایشون اردوز به وزارت اونجا نوشته که این اشتباهه یا همونطور که شیخ کلینی فرموده است احمد بن محمد بن عیسی ابن محمد بن عیسی بن ابی ان ابو القاسم سیرال ان شاء الله که می‌دوشنده